ببینید معمولا امروزه پدر و مادران و خانواده ها ابراز دوستی نسبت به فرزندانشون میکنن اما اون چیزی که اهل بهشت میگویند به خاطر او وارد بهشت شدیم صرفا محبت نیست بلکه اشفاق است یعنی محبتی که همراه با دلسوزی باشد محبت تنها یعنی هرچه بچه از من تقاضا کند چون بچه را دوست دارم برایش فراهم میکنم اما وقتی محبت همراه با دلسوزی شد گاهی بچه چیزی رو از انسان تقاضا میکند چون میبینیم به صلاح فرزندمون نیست و میبینیم مشکل آفرین خواهد بود میگیم نه این فعلا به صلاح تو نیست این رو بهش میگن اشفاق